باب هشتم در آداب صحبت مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال عاقلی را پرسیدند، نیکبخت کیست و بدبختی چیست گفت، نیکبخت آن که خرد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد.